نو پیشنهاد برای داشتن بهترین استفاده از این کتاب. یک اگر دوست دارید بهترین استفاده را از این کتاب داشته باشید، به یک فاکتور قیل قابل اجتناب نیاز دارید. فاکتوری که از هر تکنیکی مهمتر و ضروری‌تر است. بدون داشتن این شرط لازم، چنانچه هزار قانون هم درباره ی روش‌های مطالعه به شما ارائه شود و از آنها پیروی کنید باز هم نتیجه نخواهید گرفت اما اگر این موهبت بزرگ را داشته باشید بدون نیاز به هیچ پیشنهادی راجع به اینکه چگونه می توانید بیشترین استفاده را از کتاب ببرید می توانید نتایج بزرگی به دست بیاورید اما این فاکتور سرامیز چیست علاقه ای عمیق و انگیزه ای جذاب برای یادگیری تصمیمی قدرتمند در راستای ارتقای توانایی رفتار با مردم چگونه می توان این انگیزش را در خود تقویت کرد؟ با یادآوری مداوم اهمیت این قوائد به خودتان برای خود مجسم کنید که مهارت یافتن در آنها چگونه می تواند شما را یاری کند تا زندگیتان را سرشارتر، شادتر، بی و کاملتر کنید بارها و بارها به خودتان بگویید محبوبیت شادی و ارزش اهمیت بستگیه بسیار زیادی به توانایی هم در رفتار با مردم دارد در ابتدا یک مرتبه با سرعت هر فصل را بخوانید تا شمایلی کلی از آن به دست بیاورید به احتمال زیاد وسوسه می شوید به فصل بعدی یورش ببرید اما این کار را نکنید مگر هنگامی که برای سرگرمی کتاب را می خانید چنانچه کتاب را به قصد این می خانید که تواناییتان را در روابط انسانی تقوییت کنید بعد از خواندن سریع حرف اصل به عقب برگردید و این بار با دقت و صحت تمام دوباره آن را بخوانید. در طولیانی مدت چنین روشی هم در زمان سرفجویی می کند و هم نتایج بهتری به شما خواهد داد س زمانی که مشغول خاندن هستید هر از گاهی مکس کنید و به آنچه چه می فکر کنید. از خودتان بپرسید چگونه و چه موقع می‌توانید هر کدام از پیشنهادها و قواعد را به کار ببندید. چهار با یک ماجیک، مداد، خودکار، خودنویز، ماجیک، آیلایت یا هر وسیله یه دیگری از این قبیل که در دست دارید وقتی به پیشنهادی برخوردید که به نظرتان می توانید از آن استفاده کنید خطی کنار یا زیر آن بکشید اگر پیشنهاد فوقلاد مناسبی نظرتان را جلب کرد و خواستید امتیاز چهار ستاره با آن بدهید زیر تمام جاملات آن خط بکشید یا آنها را هایلایت کنید یا علامت چهار ستاره را کنار آن رسم کنید هایلایت کردن یا کشیدن خط زیر بخشی از یک متن آن را جذاب می‌کند و مرور آن بسیار آسان تر می شود پنج. خانومی رو می شناختم که مدت پانزده سال سر دفتر یک شرکت بزرگ بیمه بود او هر ماه تمام قراردادهای شرکتش را می خاند. بله او هر ماه و هر سال همان قراردادها را می خاند. چرا؟ چون تجربهش به اونشان داده بود که این تنها روشیست که با آن می تواند حساب و کتاب شرکت را با جزئیات کامل در ذهنش محفوظ بدارد. در یک مورد تقریباً دو سال مشغول نوشتن یک کتاب با موضوع سخنرانی در مجامع عمومی بودم اما باز متوجه شدم که می‌بایست هر از گاهی به عقب برگردم و دوباره آن را بخوانم تا به یاد بیاورم در کتابم چه چیزهایی را نوشتم. سرعت فراموشی ما خیره کننده است. بنابراین اگر می‌خواهید از این کتاب سود واقعی و مندگار ببرید تصور نکنید روخوانی سطحی آن هم برای یک بار کافی است بعد از اینکه آن را با دقت تمام خواندید باید ماهی یک بار چند ساعت از وقتتان را به مرور آن اختصاص دهید آن را هر روز روی میز کارتان و پیش چشمتان قرار دهید هر از گاهی نگاهی به صفحات آن بیندازید همواره به خودتان تذکر دهید که در آینده نزدیک موقعیت های برای پیشرفت به دست خواهید آورد. به یاد داشته باشید به کارگیری این قواعد تنها با تمرین، مرور و تکرار قدرتمند و همیشهگی میتواند به عادت تبدیل شوند. هیچ راه دیگری وجود ندارد. شش از نظر برنارد شاو اگر مطلبی را فقط تدریس کنید هرگز کسی آن را یاد نمیگیرد به واقع شا درست میگوید فرایند یادگیری فرایندی عملی است ما با عمل کردن یاد میگیریم از همین رو اگر آرزویتان این است که بر قواعدی که در این کتاب مطالعه می کنید تسلط پیدا کنید فعالیت های مرتبط با آنها انجام دهید در هر موقعیت مناسبی آنها را به کار ببندید اگر این کار را نکنید به سرعت آنها را فراموش خواهید کرد. فقط دانشی در ذهن می که به کار گرفته شود. ممکن است به کار بستن این قوائد در هر موقعیتی برایتان سخت باشد. من این را می چون این کتاب نوشته من است. خودم هم متوجه شدم که به کارگیری تمام مطالبی که از آنها دفاع کردم و آنها را سودمند دانستم، برای خودم هم سخت بوده است برای مثال وقتی شما رنجیده و آزرده خاطر شده اید انتقاد کردن و محکوم نمودن بسیار آسانتر از تلاش برای درک دیدگاه فرد مقابل است در چنین موقعیتی عیبجوی و شماتت به مراتب آسانتر از تمجید و تحسین است طبیعی است که درباره آنچه خودتان می صحبت کنید نه در باره یه آنچه دیگری به دنبال آن است. بنابراین همانطور که این کتاب را می به خودتان یادآوری کنید که صرفاً به دنبال کسب اطلاعات و دانش نیستید. در پیان باشید که عادتهای جدیدی را در خود شکل دهید. بله شما می روش زندگی جدیدی را ترراحی کنید. چنین تحولی نیاز به زمان پافشاری و ممارست هر روزه دارد. بنابراین هر از گاهی به این کتاب مراجعه کنید آن را به عنوان کتاب راه نمای روابط انسانی بشنازید و هرگاه با مشکل خاصی مواجه شدید از جمله کنار آمدن با کودک جلب نظر و موافقت همسرتان با خودتان یا راضی کردن یک مشتری عصبانی بنابراین از انجام کاری که عادی و طبیعی به نظر می‌رسد و بدون فکر قبلی به ذهن آدم رسوخ می‌کند خودداری کنید چنین واکنش‌های معمولاً نادرستند. به جای آن به صفحات این کتاب مراجعه کنید و عبارات‌هایی که زیر آنها خط کشیده اید را مرور کنید. سپس روش‌های جدیدی که در این کتاب با آنها آشنا شده اید را امتحان کنید و شاهد باشید که برایتان چه معجزه‌ای می‌کنند. هفت هر بار که همسر، فرزند یا همکارتان مچ شما را در حین نقض یکی از این قواعد می‌گیرد، به او سکه پول هدیه بدهید بازی تراحی کنید که با آن بتوانید بر این قواعد تسلط پیدا کنید هشت. رئیس شعبه مهم و بزرگی از بانک سرمایه داران نیویورک در کلاس ی سخنرانی که ایراد کرد به شرح سیستم فوقلاد کارآمدی پرداخت که برای خود به سازی از آن استفاده کرده بود. آن مرد تحصیلات رسمی کمی داشت، اما با این وجود توانست یکی از مهمترین سرمایه داران آمریکا شود. او اعتراف می‌کند که بیشتر موفقیتش را مدیون به کارگیری همیشگی سیستم ابداعی خودش بوده است. این شیوه کاری او بود. در این قسمت تا جایی ثبانستم، گفته‌های او را با ابراز پردازی‌های خودش آوردم. من تیم مدت سال‌ها دست نوشته‌ای با خود داشتم که تمام قرارهای هر روزه ام را در آن می‌نوشتم. خانواده‌ام هرگز برای شنبه شب‌ها برنامه ای برایم در نظر نمی‌گرفتند، چرا که می‌دانستند من هر هفته چند ساعت از شنبه شبم را به بازنگری فرایند درون خیشتن، خودآزمایی و مرور کارها و ارزیابی عمل کردهایم اختصاص می دادم بعد از شام به جای خلوتی می رفتم کتابم را باز می کردم و درباره تمام مساهبه ها، بحث ها و جلساتم که در طول هفته انجام داده بودم به دقیقت فکر می کردم از خود می پرسیدم فلان روز چه اشتباهاتی مرتکب شدم چه کاری انجام دادم که صحیح و مناسب بود؟ چگونه می توانستم روش و بازدهیم را بهبود بخشم؟ از فلان تجربه چه درس هایی می توانم بیاموزم؟ اغلب اوقات این مرورهای هفتگی مرا به شدت ناراحت می کرد به دفعات اتفاق می افتاد که با پی بردن به اشتباهات احمقانم شکه می شدم البته با مرور زمان این اشتباهات کمتر می شدند در مواردی هم بعد از اتمام جلسهی دوست داشتم به خودم آفرین بگویم این سیستم تجزیه و تحلیل خیشتن و خداموزی که سال به سال ادامه پیدا می کرد بیشتر از هر کار دیگری که انجام داده بودم برایم سودمند بود این شیوه به من کمک کرد تا قدرت تصمیم گیریم را ارتقا دهم و در تمام ارتباط و تماس هایم با دیگران مددکارم بود نمی توانم بهتر از این توصیه ای به شما داشته باشم حال چرا شما برای بررسی نحوه عمل کردتان بر اساس قواعد این کتاب از سیستم مشابهی استفاده نکنید اگر به این نحو عمل کنید دو نتیجه آیتتان خواهد شد اول اینکه می فهمید در حال گزراندن فرایندی آموزشی هستید که هم برنامه ریز است و هم بی نهای درزش مند دوام هی میبرید که تواناییتان در برخورد و رفتار با مردم به شدت در حال تقویت است نو در بخش پایانی کتاب چند صفحه سفید هست که باید موفقیتهایتان در بکارگیری این قواعد را در آنها سبت کنید سعی کنید جز ایگرا باشید نام، تاریخ و نتایج را بنویسید سبت چنین مطالبی در انجام دادن کارهای بزرگ الهان بخش شما خواهند بود و چقدر برای تان جالب و لذت بخش است که چند سال بعد به طور اتفاقی این کتاب را باز کنید و نوشته هایتان را بخوانید. برای داشتن بیشترین استفاده از این کتاب علف علاقه امیر و محرکی برای تسلط یافتن بر قوائد روابط انسانی در خود ایجاد کنید ب هر فصل را دوبار بار بخوانید سپس سراغ فصل بعدی بروید جیم به هنگام خواندن هر از گاهی مکث کنید و از خود بپرسید چگونه میتوانید هر پیشنهادی را در موقعیت های ویژه خودتان به کار ببندید دال زیر ایده های مهم خط بکشید ه هر ماه این کتاب را مرور کنید و در موقعیت‌های مناسبی که برایتان پیش می‌آید از این قواعد پیروی کنید از این کتاب به عنوان راهنما استفاده کنید تا شما را در حل مشکلات روزانه‌تان یاری کند ز هر بار که یکی از دوستانتان هنگام نقض این قواعد موچتان را گرفت به او سکه پول بدهید و با این کار بازی نشاط‌آور و جالبی درباره یادگیری‌تان انجام دهید ه هر هفته پیشرفتتان را بررسی کنید و از خود بپرسید چه اشتباهاتی مرتکب شده اید چه پیشرفتی داشته اید و چه درسی برای آینده یاد گرفته اید تا در بخش پایانی کتاب یاد داشتهایی ثبت کنید با این مضمون که چه موقع و چگونه این قواعد را به کار بسته اید و چه نتیجه ای آیتتان شده هست